مصنوی معنوی مولوی برنامه سیو ششم اکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد رحمت صد دو بران بلقیس باد که خدایش عقل سد مرده بداد هدهد نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرف با بیان خان دو آن نکته های با شمول با هقارت ننگریدن در رسول جسم حد دید و جان انقاش دید. حس چو کفی دید و دل دریاش دید. عقل با حس زین تلسمات درنگ چون محمد با ابو جهلان جنگ کافران دیدند احمد را بشر چون ندیدند از وی ان شق القمر خاک زن در دیدهی حسبین خیش دیدهی حس دشمن عقل است و کیش دیدهی حس را خدا اعماش خاند بدپرستش گفت و ضد ماش خواند که او کف دید و دریا را ندید زان که حالی دید و فردا را ندید خواجه فردا و حالی پیش او او نمی بیند ز گنجی جز تسو ذره زان آفتاب آورد پیام آفتاب آن ذره را گردت غلا قطره که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحران قطره را باشد اسیر گر کف خاک شود چالاک او، پیش خاکش سرنهد افلاک او خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهند. املاک حق از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاک برگو شد خاک از دردی نشیند زیر آب خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب آن لطافت پس بدان که آب نیست. جزعت های مبدع وحاب نیست. گر کند صفلا هوا و نار را ورز گل او بگذراند خار را حاکم است و یفعل الله مایشا کوز عین درد انگیزد دوا گر هوا و نار را سفلا کند تیرگی و دردی و سقلا کند ور زمین و آب را الوی کند راه گردون را پا مدوی کند پس یقین شد که تو ازون من تشا. خاکی را گفت پرها برگشا آتشی را گفت رو ابلیس شو زیر هفتم خاک با تلبیس شو آدم خاکی برو تو بر سوها ای بلیس آتشی رو تا سرا چارتب و علت اولا نیم در تصرف دائما من باقیم. کار من به علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیب. عادت خود را بگردانم به وقت این غبار از پیش بنشانم به وقت بهر را گویم که هین پرنار شو گویم آتش را که رو گلزار شو کوه را گویم ثبک شو همچو پشم چرخ را گویم فرو در پیش چشم گویم ای خورشید مقرون شو به ماه هردو را سازم چدو ابر سیاه چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. آفتاب و مه چدو گاو سیاه یوغ برگردن به بنددشان ال. انکار فلسفی، بر برقراعت ان اسبه ماوکم اوکم غورن مقریه میخاند از روی کتاب ماوکم اوکم ز چشمه بندم آب آب را در غورها پنهان کنم چشمه ها را خشک و خشکستان کنم آب را در چشم کی آرد دگر جز بی مثل با فضل و خطر فلسفی منطقی مستحان می گذشت از سوی مکتب آن زمان چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آر آب را ما با کلند ما با زخم بیل و تیزی تبر، آب را آریم از پستی زبر. شب بخفت و دید او یک شیر مرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. گفت زیندو چشمه چشم عشقی با تبر نور برار ارصادقی. روز برجست و دوچشمه کور دید، نور فایز از دو چشمش ناپدید. گر بنالیدی و مستخفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی. لیک استخفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بر دل او بسته بود. دل به سختی همچون روی سنگ گشت چون شکافت توبه آن را بهره کشت. چون عیب کو که تا او از دعا بهره کشتن خاک سازد کوه را. از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل یا به یوزه مقوقص از رسول سنگ لاخ مزرعی شد با اصول همچنین برعکس آن انکار مرد مس کند را و صلحی را نبرد کهربای محس خامد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. هر دل را سجده هم دستور نیست. مزد رحمت قسم هر مزدور نیست. هین به پشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه در آیم در پناه. می بباید تاب و آب تو برا شد برق و صحاب تو برا آتش و آب بباید میورا واجب باید ابر و برق این شیورا تا نباشد برق دل و برد و چشم کی نشیند آتش تهدید و خشم کی بروید سبزه زوق و سال کی بجوشد چشمهها زاب زلال کی گلستان راز گوید با چمن کی بنفشا عهد بندد با سمن کی چنار کف گشاید در دعا کی درخت سرفشاند در هوا کی شکوفه آستین پرنسار برفشاندن گیرد ایام بهار کی فروزد لاله را رخ همچو خون کی گل از کیسه برارد زر برون کی بیاید بلبل و گل گلبو کند کی چو طالب فاخته کوکو کند کی بگوید لک لکان لک لکلک بجان لک چه باشد ملک توست ای مستعان کی نمایت خاک اسرار زمیر کی شود به آسمان بستان منیر از کجا آوردند آن حلهها؟ من کریم من رحیم کلها آن لطافت نشان شاهد است، آن نشان پای مرد آبد است آن شود شاد از نشان کودید شاه چون ندید او را نباشد انتباه روح آنکس کس کو به هنگام اله دید رب خیش و شد به خیش و مست او شناسد بوی می کو می بخورد چون نخورد او می چه داند بوی کرد زان که حکمت همچون ناقی زال است همچو دلاله شهان را دال است تو ببینی بی خواب در یک خوشلقا کودت وعده و نشانی مرترا، را که مراد تو شود اینک نشان که پیش آید تو را فردا فلان یک نشانی آنکه او باشد سوار یک نشانی که تو را گیرد کنار یک نشانی که بخندد پیش تو یک نشان که دست بندد پیش تو یک نشانی آنکه این خواب از حوست چون شود فردا نگویی پیش زن نشان با والد یحییّا بگفت که نیایی تا سر روز اصلا بگفت تا سه شب خاموش کن از نیکا بدد این نشان باشد که یحیا آیدد دم مزن روز اندر گفتگو که این سکوت است آیت مقصود تو هین آور این نشان را تو بگافت وین سخن را دار اندر دل نهافت این نشان ها گویدش همچون شکر این چه باشد صد نشانی دگر. این نشان آن بود کان ملک و جاه که همه جویی بیابی از اله، آن که می گیری به شبهای دراز و آن که سوزی سحرگا در نیاز آن که به آن روز تو تاریک شد همچون دوک گردنت باریک شد و آن چه دادی چه داری در زکات چون زکات پاک بازان رخت هات رخت ها دادی و خواب و رنگ رو سر فدا کردی و گشتی همچو مو چند در آتش نشستی همچو عود چند پیش تیغ رفتی همچو خود زینچونین بیچارگی ها صد هزار خوی اشاق است و ناید در شمار چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، کن نشان و آن علامت ها کجاست. بر مثال برگ میلرزی که وای گر روزو روز و نشان ناید بجای، می دوید در کوی و بازار و سرا، چون کسی کو گم کند گوساله را. خواجه خیر است، این دواده و چی گم شده اینجا که داری؟ کی گوییش خیر است، لیکن خیر من. کس نشاید که بداند غیر من. گر بگویم، نکنشانم فوت شد. چون نشان شد فوت وقت موت شد. بنگری در روی هر مرد سوار گوی دتمنگر مرا دیوانوار اش من صاحب گم کردم رو به جست جوی او آوردم. دولتت پاینده بادا ای سوار رحم کن بر آشقان معذور دار. چون طلب کردی به جد آمد نظر جد خطا نکند چونین آمد خبر ناگهان آمد سوار نیک بخت. پس گرفت اندر کنارت سخت سخت تو شدی به هوش و افتادی بتاق به خبر گفت اینت سالوس و نفاق او چی می بیند در او این شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست. این نشان در حق او باشد که دید. آن دگر را که نشان آید پدید. هر زمان که از وی نشان می رسید، شخص را جان به می رسید. ماهی بیچاره را پیش آمداب، این نشان ها، تلک آیات و پس نشانی ها که اندر انبیاست خاص آنجان را بود کو آشناست این سخن ناقص بماند و بیقرار دل ندارم به دلم معذور دار ذره ها را کی تواند کس شمارد خواست آنکو عشق عقل او ببرد می شمارم برگ های باغ را می شمارم بانگ کپک و زاغ را در شمار اندر نیاید لیک من می شمارم بحر رشد ممتحن. نحس کیوان یا که سعد مشتری ناید اندر حصر گرچه بشمری لیک هم بعض از این هر دو اثر شرح باید کرد یعنی نفع زر تا شود معلوم آثار قضا شمه مر اهل سعد و نحس را تاله آن کس که باشد مشتری شاد گردد از نشاط و سروری وانکراتاله زحل از هر شرور احتیاطش لازم آید در امور گر بگویم آن زحل استاره را ذاتشش سوزد مران بیچاره را اذکر الله شاه ما دستور داد اندر دید ما را نور داد گفت اگرچه پاکم از ذکر شما نیست لایق مرمرا تصویرها لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد ذات ما را مثال. ذکر جسمانه خیال ناقص است وصف شاهانه از آنها خالص است شاه را گوید کسی جولا نیست ان چیمت هست این مگر آگاه نیست انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان دید موسا یک شبانی را براه کو همه گفتهی خدا و ای اله تو کجای تا شوم من چا کرد چارو قدوزم دوزم کنم شانه سرت جامعت شویم شپشهایت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب بروبم جایکت ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت، ای حی و های من، این نمت بیهوده می گفتان شبان، گفت موسا، با کی هستین، ای فلان، گفت، با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چهر خزو آمد پدید، گفت های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه یا در دهان خود فشار. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. چارق و پاتابه لایق مرتراست آفتابی را چونینها کی رواست گر نبندی زین سخن تو حلق را آتش آید بسوزد خلق را آتش گر نامد است این دود چیست جان سیاه گشته روان مردود چیست همه دانی که یزدان داور است ژاژ و گستاخی تو را چون باور است دوستی خرد خود دشمنی است حق تعالی زین چنین خدمت غنی است با که می گویی تو این با ام و خال جسم و حاجت در صفات زلجلال شیر او نوشد که در نشو نماست چارق او پوشد که او محتاج پاست ور برای بندش است این گفت و آن که حق گفت او منست و من خودو آن که گفت انی مرست و لم تعد من شدم رنجور او تنها نشد، آن که به یسمع و به یب سر شده است، در حق آن بنده این هم به است. به ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند، سیاه دارد ورق، گر تو مردی را بخانی فاطمه، گرچه یک جنسند، مرد و زن همه، خست خون تو کند تا ممکن است گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است فاطمه مده است در حق زنان مرد را گویی بود زخم سنان دست و پا در حق ما استایش است در حق پاکی حق آلایش است لمیلت لمیولت او را لایق است والد و مولود را او خالق است هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست هرچه مولود است او زین سوی جوست زآنکه از کاون و فساد است و مهین حادث است و محدثی خواهد یقین گفت ای موسی دها نمدختی واسپشمانی تو جانم سوختی جا مرا بدرید و آهی کرد رفت سر نهادن در بیابانی و رفت اتهاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بحر آن شبان وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی، تا توانی پامنی اندر فراق، ابغز الاشیاء اندی الطلاق هر کسی را سیرت بنهادم، هر کسی را اصطلاح دادم در حق او مدح و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم ما بری از پاک و ناپاکی همه از گرانجانی و چالاکی همه من نکردم امر تا سوده کنم بلکه تا بربندگان جوده کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان. ما زبان را ننگریم و قال را. ما روان را بنگریم و حال را. نازر قلبیم اگر خاشع بود. گرچه گفت لفظ ناخازه رود. زان که دل جوهر بود گفتن عرز. پست و فیل آمد عرز جوهر غرض چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز آتش از عشق در جان برفروز سر بسر فکر و عبارت را بسوز موسی آداب دانان سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدن است برده و ویران خراج و عشر نیست گر خطا گوید ورا خاطی مگو گر بوود پرخون شهید او را مشو خون شهیدان را ز آب اولاتر است این خطا از صد سواب اولاتر است در درون کعبه رسم قبله نیست چه غم ار غواص را پاچیله نیست توز سرمستان قلاووزی مجو جامچاکان را چه فرمایی رفو ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست لعل را گرمار نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست